چه میدونستم که بدرتی یکیه دادی اولا بکرم نمیگی نه میخواستم بگم وقتی از مدرسه ما رو خرص شدی یه دونه نون بستنی نونه سنگه که نخونی خاشخاش بدون خاشخاش از گلوت پایین نمیره سنگه پایی میره چه سر به نونه خوردی بگه الان صحب برم حالا شم این رایتی ندهدی یه طور که برش بخونم فوتی آب میشم همین آتو با ای گچه نه که کل خود باید نیست ای دیو سپیل پای دربند ای گمه گیتی ای دم آبا ای دیو سپیل پای دربند اه اوه ای دیو سپید پایدر بند ای گمه بده گیتی ای دمو بند. ای دیو سپید پایدر کی بود در بند نیمیدیرم ما یاشن درسم حاصل میکردم درست مدوم میخونی ای دی سپید پای من یه یعنی آفست مگه وقتی پشتیدم چیش می داره. داری که آفست دیگر این همه زور بزنن، گل بزنن، آخر آقا میگه گفته. ایتلاف دیگه بی خوای نکنیم. کارتی که نشستیم رو برد. تا همون کارت. اگه تو بخوای برادی سو بزنی بفهم. به نزدیکی آمده. من اوکی دوباره ندارم. من هستم. از تو بیام از ما ترس. حالی بود. باشه دادم. مارش میگردن. چامو کن بهطور یه اینر کن ها چا ان ای هم این کف شد دیگه فایده نداره باید یوزت زت لاشقا باید با این کف شد حالا قدام شه گرزه نفصار بفرمین این چه وقت مدرسه اومدنه پسر جو به خدا همه رو با باد ویدی یه کایلاک از در بونگه مردم نین و توازه تو قدیدن شوردم قسکلوس خواستم میبینم زیرزه کاش گذام تا اب شد آقای مهمار زده بخو دیدی biz ne şey yapalım? Ne izlesinler? Belki sen de kalle. Hey tanay. O da bak fönen. Niye bekliyorsun? O boş şey, duruş der, ruzgar. Sus, dinlemediye. Bak, komiştir. Hadi kabre becer. Daha hiç behte satır irade gismini alıptı. Miğim, چه کنم هست. معلوم هستون زیرداری چی کار میکنیم؟ آقا این نویزه ما سرزام میشینیم آقا دروق میگه خودش کفش ایمار پاش کرده و نویزه ما درس رو گوش بدیم از امروز باید بیس بار جریبه بنویسین تا درست درس رو بفهمیم بفرمین بیرون آقا بله شما باید بنویسین بفرمین بیرون بفرمین بیرون از دن مقاضه ببینم راستی راستی کفش 60 از اگه بود چی؟ اگه بود مم. از دن مقاضه کرفش که در خورتون مگه باری میکنم به تو پول میدم پس من چی؟ بچه آقا نه لفتن خدا فر. خدا فکر از درستش رفت بینیدن واسه زور داشت ساخانه بود امون بهتر کرا اگه میباختی بینه یه یک قدم هم بهش کلی بگی اگه بینیسن کتی بخنی میگی که شرط میبستن خودشی میکتر اشم تو کاوی گیر قیمتشو تو گذاشته باشی. با این کفشمو شی گذانش بذار این تو. کفشمو که شی کهش تو. اینا ما رو اونقدی. برو تو. ما نمیخویم ما چه فراده بگیریم. من شعرش گذاشتم. حالا بذار بسانم. یه رو گفته باشه. آسونگی بزنیم نمیام. یه ببین. بفارمی. سلام علیه سلام پسرم چی میخواستی؟ میخواستم بپرستم کفش داری؟ جوری چی میخواد؟ ننگه کفش بسرمه ما کسی زیر میکنه آها آها نوره پا چند عزیزم؟ پارساسی یا بود ولی امسان نمیدونم خب پسرم چه با بزرگترت نیومدی من کفر خودم میخوام نه را بزرگترم <تصفيق> خدا کنه که پایده پاک باشی خب قیمتش سنده پسرم اول پاک بکن بعد وقتی اندازه پاک شد سر قیمتش چونه میزنی اروکسه اروکس دفعه این صدا دوست داری رو, رو آختر مادرت سومات آقا به من تقصیر من است، تقصیر وای تو به ایران گوش کنم تنها هر روز اینی بوده خیلی خب فردا. اوه اوز شد. حاضی. به خدا نفهمیم تر شو <تصفيق> ایرادی نداری مایز چند بار دلار شدنه <تصفح> چه خرشانس مستد اگه من بودم با اردنگی میداختنش خدمتیام ولی اینکه که این گلو مشتریشه اگه بفهمه که پول توی جوش نیست رو به قبلش میکنه پنجاتی که نمیزنی اگرم بزنه برون نمییرم <تصفيق> خب پس, پس زنگیدی ها مبارکت باشی حالا کهشان دریا بده بذارم تو جهبه هست آقا عزید شما که هم و قیمت شما نگفتیم مستمین باش بیشتر از پسر میمار نمیگیرم چه قردش گرفتیم؟ هیچده هزار توم گپور راست گفته بیدیو را ببینم خب حالا پولات و بریز اینجا ببینم چقدر کم کس داری همه چی همه شو بچه جون یه شاعت من سرکار بزشته حالا میگی همه حزی به بخواه من فقط مدابرم خود کمیتی شو اگه پول داشتم بیشتر از تو میخریدم پسرم فکر میکنی کی پول دار بشی هیچوقت بابا چی دی می دکونه داره داری و تخت خورد و تو بودار شدی کافشالون تجربه کن. کوله هزیا کول خدا حالا، پس کنونه آخه اینجوری که نمیشه افت دو کنونه ای ای ای مگه همین دیروز ندادم اوز حبیب پینه دور باز تو اینو پاره کردی؟ تقصیر من چیه؟ وقتی نخوایز برتیم اگه شما یه تو فیابشه حسابی با من بخیردین دم بدم حالی آخه من با چروی از بابای تو پول بخونم وقتی کاسه که ساده مایشنش شمش هزار تومنه چی؟ هی علی به این وقت روز قسم یقا از دستت پاره میکنم آ. حتی رو مانیفه حالی عقشو باید خیره سر اونا پوستشون پوله هیچدن هزار تومن براشون باد حواست خب قسطی ها زبون نفم میگم نره میگی بدوش قصی نباید طول داد حتما با تو کتک حساب تو رسید اصلا من چرا دارم زبون میریزم؟ میرم الان با بابا تو صدا میکنم خودش هر پستت خمش، علی، علی! بابا تا رنود بزلا ده. نکنه بچه بیفته چه مزه میده یه سو رگه چپ شو اون قیمتیانه گیری باش حرف رضا نوازش بد میشه مگر خودت نگفتی باید تربیت بشه گفتم اما نه اینجوری که همون دقت کنی هم منو ها نگه قلب کردم اس پاینو مدن خبری نیست مادر یه کلمه بگو غلط کردم منو از این دله رو عذاب نجات بده خودت رفتی و کشش خوندی این آشهران پختی ببین چه سیفیدی پور رو تا نگه دیگه حرفی کفشرا نمیزنن باید همون بالا بمونی خب حرف زور میزنی او قیرتش قبول نامه جلو این همه آدمی رو بگی تو که بچه نداری بدونی چه خرجی داره این ای پولی که هنوز خرج میکردیش که قد مایه نذری مایه میذارم و عظم اینه وای به وقتی که مایه نذارم نه از خر شیطان بیا پایین بابا نخواستم نظر از حرفی که زدم مثل سگ کشی بشم. این باید چیم آمون؟ یا امام ای بگو چاو چیکار کردی؟ می‌ذارین. اس که به خاطر مسابقه که دارین خریدین. میای بازی؟ خیلی دلم خو، اما هیپ که کفش ندارم. خب پاورنه بازی کن. تخت یه هم درمت. بیامت باشوت. واهمه که کف به اونم بر بیاد. مگه حالا حصر برای سر بهات میاد. وقتی آدم بعد بیار باشه. ادم دیوار براش نیواره. خیلی باچ بود. اگه نمیای بازی، بردم حتمی بود. گفتم که نمی‌تونا. حالا که نمیتونی باز کنی بیا سوت بزن میترسم سوت دادنم بر زیرا نمراحت کنه هر خودتی سوت زدن کردم خودم واسه خودم سوت نیزد حاضی یه از تنیم قدر نیکی بیم به تو دادم بله چه میشه؟ بله اشکی عمل قصیده ویا ماذابار گف. دست دار نکنی. سلام. سلام بیسالو. چه سگه دولت سیم شدی؟ به جون علی اگه باخته باشم ما زام تا دم خونتون کولت کنم. باختم. نمیدم. من باختم. به دفو نیمی حالا علاوه سن نمیخوری؟ یه دستو در چه؟ خیمشرا عفو نمیخوام. اصلاً حَم جای ماو نمیمزن. خب شو چی گفتی؟ منم یه خر با درد نمیشه. کجا ما میشه دو, دو خر؟ کی گفته رفیقه میخورد مفته می که نیست پول میدن روات چی جای ممدگیه مصالحی که چندی؟ آش که تو بیگی مانتره جمعای پول چه نمیشه حالا بگو دیگه 50 تومن خوبه ولی هر جا یک 50 زیاده نیست میشه از دم که 20 تومن نیمه صافه بلیش درسم هر جفتش هر جمعای خدا چی پول بیشتر از 22 حساب از حساب حساب 5 تو تا عذاب میدی؟ بلنشو مثل بچه آدم سر جاد بخواب چی خوابه؟ درم حساب کنم تن تا یاد بنویسم خب تو جا هم میتونی فکر کنی پس این ذریع نهایی که بنویسه؟ مگه فردار رو ازت گرفته؟ فعلا مباشر زریمه هست سر، دفتر ازنم اكثر من خودم رسیده. این چه مرضیه به جونت افتاده است؟ میترسم از پاپیلت یا ناترس از هفته بیشتر از دارم. نه به اینکه لای کتابو وا کردی، نه به اینکه مثل کنه چسبیدی بهش. حالا اینقدر قور بزن تا وره بیدار کنین. الانشم بیدارم. از اسمان در بکردم یه با بوشه بیم دیگه بیزا برا فردا بیم بگی بخواب باید هم شد هم شد بگیم بشه نا ادا بکنم اما جای من است تا این پیوشهای جهاز آتوما. میخواه میخواه اما این که افشانی میذاره تو که پا بره نهی وقتی خیلی همه این وقت نمیشنوی صدای خروصی از دور دست میاخ اونوالی من هنش آه. قلط قلطه قلط قلطه شمه لگیسی اگه اینجوره از دور مستر. بایدر خانه بایدر از بستنیم کار رو کردی و بسیر به زورتا در چهار تا خود صبح بیداری کشید نگاه توشی این خونم خواهر فرحات دقت داشتی دلت خوشه تا خود صبح پروز دل. کرده و داشتم زرمانی در, در مار خودم داشت خودم همی را که به کمر بسته بود محکم کرد حسر جون وقتی خمیازه میکشی جلوی دهنتو بگیر تا زنگوله حلقت پیدا نشه. تو زیر لب دعای خام و قدم <تصفيق> زی الله سقای خان تیتی بود؟ هیچی هیچی یکی دو دوزی که دهنی می نزم بابا جونیا شکولات بود. رایش کن بیا به جون علی آخریش بود تعمونده را... شکولده خونه جونه نه از مشکری می خریدم مدانی از مدانی ها مشکری ایکی هشت تو می یه با سکولات هشتا تا مشکری می دیگه حدیث سلام از این شکلات سفینه یا موشه کلرین بل دونه ای تنده دونه ای نیست بسته ایه بسته ای تنده بسته 600 رو به همون قیمتی مشکلی میدی مشکلیم کی من میخوام از اون ارزون ت بفروشم تخفیف میده به شرط اینکه تو هم ارزم نه نازي به تو حواهد ضررش تو باچم تو چه باشی چه یی تو باش اش چی میکردشه؟ خیال کردید با این کماتی؟ کوته هاشه پس این پاکت چیه؟ کاسب شدم چی؟ شکلات. تو دهن هزاری آب میشه ای؟ یکی چند میروشی؟ برش ما مفتکی نشون کاسب باید مشتش بسته باشی نه خودی بشتازه نه به. شما نه خودی هستید نه غریبه وره کردی ولی یکی چند هست فراش مرستمون حتی دلش به خواب اما من خدا به که تا شست میپیشم که ده تونش زوده پسرم انصاف داری خدا به کسب درکت میده بگو انشالله انشالله حاضی قول میدم تا ماه نرسیده صاحبی کفشی بشم انشالله, انشالله. علی علی سخرت اونقدر داد میزنی؟ کجایی از باز دازدم گلون پاره شد؟ این چیه؟ شکلات از فردا میخوام دکونه کریما تخته این صندوقت سیه؟ کیک کیك، چک، نه خوردنیه، ببین توسی خواهد که مال پای سفره عقد خواهرمه آنقد یه طبق سفارش داده بود میشه خواهدش؟ بسه تو دستت دست پس چرا نخوردیش؟ باشه شب وقت با مای پا پاونامی خورم خب که نداری؟ ای، کجا؟ پجای مایی من چی شو؟ حرفشن نازم. دیشب مول با ما زنده شم کنم. دیشب بود. شرط میندن دیگه راحت مینویسی. گوه قوله ما کنم. که دیگه به ساعت سا کنه به هم نق میزنه. دیگه داری برهانه میاری یا؟ آم. تو اما راستش برای بیست توم این قید زون از دم که سی تو که به شرط که نقد باشه. نصف الان، نصفم وقت تحویی نه، همیشو الان باید چه از باق ای باد جیمز. بسش. خوشنم بود، گورتش دادم اه، پس یا گورتش دادی؟ این پول نم کتاب چا، من کلی کارم خدا سبس سلام سلام سلام اینو م... چی چیه؟ باز شکره که سبار کردی این پاکت چکلاته، پاکشون کاسه بکنم این پاکت شیر نی... کپولم فرهاده برده چطور شده ها؟ تم بخشی آخره آخی باید باید زنبه نمیسه باز میخواییم مثل دیشب زابران کنی؟ تا تو به این کفشت برسی یا من فر به صحرا گذاشتم که همین داشته آب میشه حالا چرا با نوم میخوری؟ از از خوشمزه از لنیمی از اتن میشه بخواب این پود از سمیران بونم خوشمزه از نه واسه بابا میزه خیلی وقت اومده است پس کزاست از همون وسط حیات راشو کچ کرد رفت اتاق مشکری ای. ای. پس اون زلغوتی شد چی کار کنه بنده خدا بسه بره یکم دلش باشه اگه اینجوره پس دار شما نمیری؟ آخو من دلم میخواد خودمون تلویزیون رنگی داشته باشی آرزی سیاسه بیشم به در مونده. درست میشه مادر بذار بابادی یک بالای شهر بگیره انشالله ما این نسی پنسی راحت میشیم همه اینا حال این است که زنگی ممار نشد <تصفح> <تصفح> چی؟ اگه باباد من هم بسی باباد فراد بود بذاری گوز کردن زمین نوشتم با هم زاشتند نکش دیوار تیلویزیو نگاه می‌کردم خب مگه بابا چشه؟ همه چش خوبه، فقط مایش نیمی‌رسه خب سر می‌کنه شد کاسه‌ای؟ می‌ره بالای شرمان وزمون خوب می‌شه اونقدر خمیازه نکش بادم خوابم گرفت، چایی تو بخور کشت نمی‌کنم گلت بزنم یه بعد یه سرمان بزنم آره، ما که رایی <تصفيق> ای وای! بابام در اومد دارم بیچاره میشم خانه خراب شدم رفت کی داره با من؟ یا هم چیکاری مپنم؟ شیر پاش رو گذاشتیم به من؟ شکلات میخواستم تموم کردم فرده شانسو یه بارم تو میخواستم ما کنیم تموم کرم آشالا فرده آشالا مشک کریم مشک کریم آششی شکلات میشه سی تو تومن نگه نشده کی گفت عرفو شده چی میدونم اونگران شست تومن شده غلط کرده هتی نیکی دونه شست تومن زده تو اون من خودم افتادت من میخر بری بریم، بری از کار کن شما شکولت بخارنی سیز بریم اوال بید باشی بید بید شیدی در دهانتی میجم بیش شکولت داری میخوری؟ که ببینم ده امز واقع ببینم او بید هم خود برو چایی کلاس این شکورتو از که قریدی؟ از خودت درفتم. من شرم از من؟ که قریدی؟ دیروز ها دیروز؟ دیروز سالتو نخوردش پس؟ ایوی داره. الان ازید اخ اخوه اخوه ایوی داره باید تو بچه خورده یکی <تصحیح> <تصحیح> کسیم نکنیم خسته شده از دست شده تا کنیم چی چی داری تو دهانت میجوی آدامسه بچه را اگه آدامسه این شکولت مثل مثل میکنی میکنی؟ جوری بخورم که دلی و اتا آقا هم شه خوبه بکن سلام هشکه سلام سلام همسایه. قصر نباشه بازی کرده مگم که به خورده چی؟ این که دارن تو مدرسه چند نفری شکلات مفرشن اویم عزونتر از ما چقدر؟ چقدر بشه که نمدونم فقط این رو که همه به چه ها میرن ازورا شکلات مستونم گرفتنش کاری نگاره اگر این کار بکنی میتونی از امشب تا هر شبی که دلت خواست بیای خانه ایم و تلویجیون مفتی تباشه بکنی مشگری می وقت تلیزیی می فقط به خودت گل جمال مشگری می گیره دم کش <محش> مررن. تو هم بعد میسییم باشی پرگانشون <تصفيق> خدا خدا حزی سلام سلام حاضزی از اون شکل که دف قرار رسیدم؟ بله. ها می آجی چه نمیدونی این ترى ای مغازه هسته نمیدونم اصلا من خبر ندارم او ان سر که به جونت بسته بود چرا صلاباتش کردی؟ مگه دیگه نمیخوای کفش بخری؟ کفش دیگه بیکرد خب اله همدلله که از سرت افتاد ببینم هنو نخریده اخی شد اگه اخی میشد یه پا کشت کلات نمیخریدم پا چی مرگت بود حراجش کردی؟ واسه اینکه که داخونه کفش تخته بود مرده است تو میدونی؟ از کجا میدونم؟ پس رو گفتی مرده از عدایت فارای تو ببینم الان راستی راستی مرده نمیدونم نمیدونم از چه را گرفتی خب اگه برای که عدسی خوریه کف ها شدیم یه کپشی کپشی نمیشه چشم بود زده بود به سرش از وقتی اسم این کپش ها تو دهنش افتاده است یه روز خوش نداریم آ هر روز خدا تیاتر داریم هر چی میکشم از دسته این تا سر اونی که این تخمه لقو و دهن این بچم هم خودشه <تصفيق> چه ده این میکنی؟ سرما مرسو سود مزنم، میخوان که الی بیاد دمه در نیستش؟ گرفته خونه دمر خوابیده این چه وقتی خوابه؟ چه میدونم؟ اوقاتش تلخه، میگه چرا کفاشه دکونشو بسته؟ میگه باید از علیه دوزه میگرفته منم همینو میگم اما خیال میکنه کفاش مرده ای، حالا راستی راستی خدا بیان مرد مرده؟ و تو هم کشدی لنگه علی؟ مگه آدم هر فکی میمیره؟ نه، حالا بیدار نمیشه اومده بودم دنبالش برمش خونامون یکم کمکم کنه ها، پس هر وقت پای مالی در میونه یاد علی میافتی؟ نه، هر وقت کار نواب در میونه یا در من که از پسش بر نایمدم تو بیا برو تو ببینیم چیکار میکنی زونانی پس شما زمینی مهیمان مورنه باشم خدا نکنه آخری روز مدا بدم دردکن به خاطر همین فکر <صح> امسی حالا میادم سلام کن سلام سلام این حالم خوب نبود تو خونه خابیده بودم من به خاطرش ما تپه شده بودم اصلاً بخط نبودم راستشیم به خاطر من یا به خاطر کفشا دروخت هر دو خیالت از باعت کفشا راحت باشه اگه اتفاقی بیفته سپردم کفشا مار تو باشه آخه این زریکی به دلم نیمی سسبه همه عشقش به این است که پولش زرینگی بدم و کفش بسون. اگه این جوره که میگی با سفت و سخت به کار میچزم زورم ها که میزنم یه آزید یکی ورد نه تاست برسکست نمیشه. به شرطی که پولشو بگیر هفتش هم نزن پس نصف نست آه آه آجی خاله نان داشته باش تسناک میجرم زیر زبونم بلما از یه ساعت دم در مدرسه منتظره می بینی دم, دم تو اینجورش کرده ببینم چیزی نیست؟ حالا نوشتی؟ تا خود صبح تو اینکندم اینه همه شو تو مدرسه؟ بیا خودت گفتی زیاد بخرم ما زیاده؟ گفتم اما الان وز نجوره مشکریم داره از دم کیفاره میگرده دنباله چی میگرده؟ دنباله همین که تو کیفده. همین امسی از هر روز بیشتر خریده بودم حالا میگیتی کاکونی میشینیم همه‌شو می‌خوریم نقشه کمی نکش میگم تو رو اون والا حیات من از اینجا شکلات پارتو کنم برات تو اون ور بگی میترسم نتونم بگیرم همش خرد و شیر بشه پس میگیتی کاکونی بزنیم پیش یکی از این دکوندارا برن که از مرس برگشتیم بگیرشون خیلیام کاسه می‌کونم ناتونی بندازم مش مشکریم با تو میونست زوره چی رو نمی‌گرده شکولاته رو از این تو کیفیتو اگه گرد برو برامد. سلام کجور می‌گه دیگر؟ برو برو برو کیفیتون نگرد که میکردم کن سلام ماست سلام شما که خیال انسال و مدروسه‌ایین بفرمایین چون؟ اوی بجوان. هاید! این به نشستی؟ تیاتر آغاز با یه سودشی رو باکن با یه سودشی رو ببند. حالا خودش کجاست؟ دانه دره ماشین میشوره پس حالا نمیتونم شیرواز کنم؟ چه میدونم از خودش به ای بچه تو که همه جونه تو خیز کردی؟ مگه تو ماشین میشونم مگه تو ماشین شوری؟ ایرادی نداره یه درگه واسه کنده جواب خوش میشه با شیر کار نداری؟ واختی که ناز آدمنا کی سوت میزنی ها وقتی کار آه بزنی نبکنی خود دگر تغصیل کله خودتا دگر با موقع ما همون باره ایچ شربی مربیه از دین بره گیر نکنه دگر باقلشه زیاد کوتاه چه هنگ بشه که آلمانی دگر الان موله که رفت نمو میشه. بشه یه باش بیا مستخصه شد یک چایی تو بخومم یک چایی بخورم نگم دو سه بار دیگه بیای اینجوری من سرتو کوتاه کنم میتونم بیام بر دست خودت همون جاهای که سرمزنی شاگردی کنم خودم هم زیادی هم کریم گوزشون زمانی که سرزنی شغلی منو آب داریم اجاب هستی میگه که دست زیاد نشه، رو دستت بلند نشه. نبه جونی کریم دارم این درمون برمزنم پولا پیلت جور کنم یه چندی انتی بگیرم تو کاری مسافرکش مگم بعد فکریم نسا این روزه دیگه همه مسافرکش شدن طرف مسافر میکشه قیافش نگاه میکنی میبینی بهش نمیرا که مسافرکش باشه ازش سوال میکنه میبینی بنده خدا خلبان بوده حالا مسافر شد حالا خراب کاری نکرده باش مشکریم بهم بخنده یه جوری زدم شف بازم بریزم مش نه دیگه دست شما درد نکن دیگرم. سر مشکلی. شما درد نکن مدارا شکس وقتی تلویزیونی رنگی و برده. حیات حسابی خلبه چه رسد خودها میدونه دست دستی قیل و قالی این چه سر سرسام گرفت بله شما راحت رفتن ولی من بیچاره شدم یک نگاه به اتاق ما. من بندر جای سوزن هم دختر نم ره. نگاه کن ببینیم <laughs> میگم اگه عهد عیال داشتیم اش جو راحت کردن هر شب هر شب رو سرت هبار بشیم خودمم با فکر افرادم پسش بدم اما میبینم اتاقم دوباره سوک کور میشه. این چی کنم اگه میخوایی از دستشون خلاص بشی بیلی تیش کنم مثل سینیما به به عجب فکر کرده چطور به عقل ناقش خودم نرسی اما میگم بابا علی، یه وقت بعد نباشه پول ازشو بستانو چه بعدی؟ مالده تازه، مصطفی برق داری؟ اتاقت جارو پارو داره میگم که نفر چند از ازشو بستانو بجایی یه نفری چقدر بگیرم ازشو؟ به نظری من بزرگارا به من به چارو پنجتو بزرگار چاییم نام. سدره که افرکی سره نمیاری؟ وا با... هر شب هر شب که نمیش بره. مگه بیره اینجا که خیلی کنه اگه شوانیتی میشه بدونم مادر ازش خیلی کیف کنم اینقدر صداشون میگر نیاد میگه صداشو شدی میاد خدا، یه روز میشه این کیسه اقوام میکنیم پولا به تاق برسه کفش مخوای بخری یا کشتی؟ کشتی چیه؟ گرم میخوایم هزار جفت کفش زیر درکتی ها بخرم تو بتون همون جفت رو بخر، بقیه هاش پیش گشه میخوایمش، حالا میبینیم حالا بیا پولا بشمان تو اسکناساتش ما من سه لطفا کوچولو تو زمین زام. خلاصو کار به پدر شکلات را عوض کن. چه جوری؟ یه عسل میشه اخراج بشه خطه. جونا هر کی سری کاری کویق تو وزام توش کنما، من... نباشه. کرده؟ من کرده؟ آقا دادا گفتم من این کردی چارج بزنم که خودت شیکمش خوردی دم اولو اشریف قرر نمی‌بینی چرا ببینم ببینم چی شده؟ هیچین همش میکردیم دست یک بچه خودت تو صورت آقا این ورش چی چیزی شده؟ بچه دستش خورده اشکر ایمون شعبه ها اولیه کماک های را دفتر بیان بودو آو برسی. بگی من بگی من با کنار. باشه. اوه بالا خونی شبان. بیا، ارایت لش. بی دیم، بی دیم ازش واسه شیمار وایه که. آقای نازم اگهی بیشتره، اصلا آبی شده که روستا بیزیم. هستی وام اگر با این دو تا شده خودم نلیده بودم حتنا می‌گفتم که اشتما بکنم ولی چه کنم که یک پاکت به این گل شکلاته. پرست شکولت بیدانم کنم کردی بعد همون وقت میوردیشون دفتر ها دگه مخصم همی کاره بکنم دگه ولی ترسیدم گفتم بیاد دفتر هاشا بکنه، بگذنه زیرش یکمه سال آبرویم که داریم پیش آقای مدیر بره. فکر نمی کنیم کلاس برده باشه بیرون محاله اصلاح و عمدان بلا نسبت دور جون شما با آقای نازم آقا مثل هون در کلاس می پاییدم نگاه بکردم چه کشمی؟ پس بگرد ممکنه جاش عوض کرده باشه اصلا منو نه بکنم اشتباه کردیم من خدا هم نون پنیر سبزی کردنه نهار زورشونه بزرسنه بر اجه هم برویجا گیستی نه هم <تصفح> گفتی گیر میابدی؟ بچه یکردم حاضی نه اون هم چه بچه گی؟ دکونت کو؟ از تو پکرم ترسی دی؟ نه حاضی بچه یکرم بنده خدا را سزندم مخصوصا که فرهاد به هم گفته بود رفته تو انباری و قرق کس رو دیگه بیرون نمیده <محتم> مرد بود گندگی قرق کرده؟ حیکرش گنده است فگرناه بدسن بدسطره من در خلاه تیز میرنگی خیده سر قصاش مونده خود تو با این کار پاک خراب تر کردی <Pomblee> به خاطر همین با شکلات و با و رفتم تو انباری کجا بودیم؟ تو کلاس کجایی کلاس مردستان من تمام کلاس زیر رو کردم وقت فرق داره ببینیم خب آبروم رفت کار کی بودی کار؟ کمان. اگه میدونستم مال هی که بند خود همفشم رازن کریم آقا برشتا نه دیگه من که دیگه شکولات نمیفرشم این که شکولو گذاشتم کنار خب منم میگه نمیفرشم پس کفچه های جلیلک داره چه از خیلی کفچه ها با این نرخی که تو شکرسی بند خدا دیگه کسی از مشکریم فکر نکنم شکرات بخره خب وقتی من نفروش هم بعد تماما از برمیان تو شما <تصفح> رات نگه اون چی تو فقط به شرطی که قیمه بیاری پا هم, هم فونشت بلا هم دخلت میشتر میشه ری نه رس ی پاکت شکلات گذاشتی پیشش مادی بیرون اه اه اه به همه راضی؟ به هم راضی. بچه هر کسی دلشون داره از می این راحتی بگذره خی نداشت دم به از ازخرش گذشت خوش به صعادت بچه یه او با خودم که رفتم، رفتن از یه عرضه نتونستم بگذره حازی به بیت رفشتی وقتی میگذره. آس خب، حالا با این دست دلوازی میخوای چیکار کنی؟ لا خیلی کاری بید. خدا. رو. حالا هوا میره. یه سینه بندی و عربانم که وقت آواش بکنی خوال شیر. سلام سلام سلام سلام. پس که به درستا برسی، اینکه جرم های توزه به درستا برسم از تو جرمه های من نوم هست اما تو این چی؟ یه زرهای زبیشی ببینی که تو این ها نوم هست مرسم خانوم، مرسم خانوم، علیه دو زیدم، <مبخان> علیه دو زیدم تا ما کونتو چی زمان که توفهی نیستم باید مادر باشی تو بفهمید دوازه همسین با بندکی روزه تو سرم که چشام برگزه سلام. سلام سلام امشان سلام. از چه خیلی نیست؟ تخصیل دختر آقاست، نیمیزش که بینیم کونه قدر لونه ما بود. دوزارون که بود. همچین کار هم نبود. حتما بهش گفته بودن که تو کیفش چیچی داره. فقط دو دو کپون. روغان که؟ شکر؟ نه مادر. پولاشو لای آسداری کیفش قایم کرده بود. پول داده توی لونه ما میکنه؟ نه اونقدر که تو فکر میکنی. قدی و دفنش که جنازهش رو زمین نمونه. شینی که آن جور اگه بیاد خونه حتما به گوشش میرسه. غذا رفته. رفت تو کوه میبینه. کجا؟ نمیه روش میونه. تو بیارم میادن بشونی بش دیگه. حالا نگاه. چههایی <تصفح> شده زاییدم؟ دختر آقا به این نازه داده شده ۱۰ زادتو من کاش باشه اما پلاغاتو نمیکرد اصلا رازی نیستم سورکی که نداده تو از جونت مایه گذاشتی اون از مالش پس رازی بوده آره حالا که اینطوره از استقرید کفش یه دم رفت کرده من خب بیا بزن به اشتقرید کفشا آفرین اارا منتظر بودن پولیما من هیچ 10 زارته آمشه بلی زن ج یا چی شده؟ خدا بهداد قرار بر اماش تسی خود قرار میگن. خودم و مرگم بیده. چی شده این به من خانم طبق معمور رفته صرف نوبایی واسده با زنای دیگه رو به قیبت کردن خواستش مره بچه بند خودش میاه تو تیابون بازی مطوری نامردن به جای که راش بره مره رو بچه ای بده دو بله خب والا چونم به برسونیمش بیمارستان چطوره بیمارستان رو باوندم. تا پول ندی که نمو خواه پولا نمیشه برچه دو بیمارستان خدا به چی میگردی؟ این چیزی که بفروشمش که بیر بفروشیش از دست رفته خدا میگی چرا که به سرمون بریزی؟ درش نکن و برش بیمارستان پولا تو؟ مم. پس کفشا چی؟ امین کفشا سرم کنم بعدا پشیمون نشید رفتی به جونما؟ فقط کسی بونا برای پولا کفشمه علی سلام سلام چی شده؟ تو نمیمدی مغازه من اومدم پیشت بک کردم نه میدی بعد از معرسه خیال باشتم میان همه سیب بگم حاضی، حالا دیگه می کفش من رو بفروشی؟ بفروشم؟ اونم کپشه تو رو؟ این چه راستش قسمت نه پاشون کنم فقط خضاعتش به واقع مونده چه خیلی بیا کجا بودی علی جان؟ چرا دیر اومدیم مدرسه دلم شروع افتاد مشکریم. دیشب از بیمارستان که درمیاد همه چیز دستگیرش میشه صبح اول صبح من داشتم نماس بیخوندم درخونم صرف شد از من کفشات خواست ایرم دو بگم کفشاتو گرفتیم اما هر کاری کردیم دیدیم هاجه ها پولش قبول نمرده خدایو شکرت ای بچم با آرز روش روزید مبارکت باشرلی جم مبارکت باشرلی به کمکت قصب خود بفرمه این آقای زازه هم؟ نه آخه آقا به خورا تو با نبود همه رو پیاده اون صد بار تازی ددم بتون وقتی که دیر می مدرسه مضاهم کلاس نشین بفرمه باشید که هرگاه کسی کار بسیار گشواری دارد با موفقیت انجام به Yeah. چرا اینجا نشستی um, آقا تو که راست رامنا داده um. نمیمین آقا موستم خریده از رو کجا داری آقا داره اینجا رو میگه تو پای خود جلوتری از حفظ می نفسی <تصفح> چخواه نکن تو اسم درم بلد نیستی از حفظ می <تصفح> او یه موقعی بود اما حالا ام. از بچم اما از برم یعنی میخوابی این که آقا داره میگه از حفظی؟ <تصفح> نه همه کتاب از حفظم پس های امتون دیگه با میرسونی؟ نه مفتا که نیست پول میدن؟ من دیگه پول نمیخوام پس چی لووان برای نبرد با دشمن, با دشمن. آه. دشمن. آه. برای نبرد سلام. سلام با چه جای اومد تو کلاس میگم از مدرسه اخراجت کنه آقا به امام دام همه کتاب از حفظ امتحانه میکنی اگه اقلی از بیس پایون تر بود از این از اخلازه میکنی بازرگاری را دیدم شه صد و پنجاف و پا و چهر زنگه نه ترس نه ترس خواهد بهش افته اصاب در به دری خرم به تسرزم تون بخواه راسی فرهاد رفتم جوزشگر زرنگا رنی فرهاد پسر میمار دیگه چه بیاد مدرسه چه نرد مدرسه آره ایگه